رادیو قبرس تقدیم میکند درمان شوپن هاور با صدای نوشین ستاری به فرزانگان و فیلسوفان اروپا برای شما مرد وراجی چون فیشته با کانت برترین اندیشمند همه زمانها برابر است و شیاد بیشتر می چون هگل را اندیشمندی پر مغز می دانید. از این رو برای شما نیست که می نویسم. فصل سی و سه خشم، پایداری اگر آرتور شوبنهاور امروز زنده بود آیا مورد مناسبی برای روان درمانی به شمار می آمد؟ قطعا او پر از نشانه های بیماری بود. در درباره خودم افسوس میخورد که طبیعت طبعی مسترب به او ارزانی داشته و شکاکیت، حساسیت، حرارت و غرور را در مقیاسی به او بخشیده که به سختی میتواند با با خونسردی و تعادل لازم برای یک فیلسوف سازگار شود. نشانه هایش را با زبانی گویا وصف می کند آنچه از پدر به ارس بردم است که نفرینش می و با همه ارادهام با آن به ستیز برمیخیزم در جوانی از بیماری های خیالی رنج می بردم. وقتی در برلین درس می فکر می کردم مسلولم این ترس به جانم افتاده بود که به زور به سربازی برده شوم از ترس وبا از برلین گریختم در مانهایم وحشتی توصیف نپذیر بر من چیره شد بیان که علتی بیرونی در کار باشد سالها ترس از جنایت در وجودم بود اگر در شب سر و صدایی به گوش می رسید از تخت پایین می پریدم و شمشیر رو تپانچه ای را که همیشه آماده و پر نگه می داشتم محکم در دست می گرفتم همواره دلواپسی و استرابی با من بود که باعث می شود در جستجوی خطراتی باشم که وجود نداشتند این دلوپسی کوچکترین دردسر را بزرگ می کرد و مصاحبت با مردم را برایم بسیار دشوار. او به امید تسکین بدبینی و ترس مزمنی که همراهش بود لشگری از احتیاطها و تشریفات را به کار می بست. سکه های تلا و اوراق بهادار را برای روز مبادا در میان نامه های قدیمی و مخفیگاه های دیگر پنهان می کرد. عنوان‌های دروغین برای یادداشت‌های شخصیش می‌گذاشت تا افراد فضول را گیج کند. نظم و ترتیبی به شدت وسواس‌گونه داشت. اصرار داشت همیشه فقط یک کارمند بانک در خدمت او باشد. به هیچ کس اجازه نمی‌داد به تندیس بودایش دست بزند. تسکین میل جنسی نیرومند اشکار آسانی نبود. حتی در جوانی از سپردن اختیارش به دست شهفت حیوانی افسوس می‌خورد. در سن 36 سالگی بیماری اسرارآمیزی رامیزی او را به مدت یک سال در اتاقش حبس کرد. یک پزشک بیمار و تاریخ نگار طب صرفاً بر اساس داروهایی که در سال 1906 برایش تجویز شده و نیز تاریخچه فعالیت جنسی غیر معمول بیماریش را سیفیلیس تشخیص داده است. آرتورا رزوداش از قید نیروی جنسی آزاد شود. از لحظات آرام و متینی که قادر بود به رغم شهوتی که خود مادیش را شکنجه میداد با آرامش به مشاهده دنیا بنشیند لذت میبرد او شهوت جنسی را با نور خورشید مقایسه میکرد که نور ستارگان را در خود پنهان میکرد وقتی پا به سن گذاشت از کاهش میل جنسی خشنود بود از آنجا که جرف‌ترین شور و اشتیاق را به کارش داشت، نیرومندترین و ماندگارترین ترسش این بود که نکند منابع مالیش را که امکان حیاتی اندیشمندانه به او میدادند از دست بدهد. حتی در سالخوردگی یاد پدرش را برای فراهم ساختن امکان این جور زندگی گرامی می داشت و زمان و انرژی زیادی را صرف محافظت از دارایی و سبک سنگین کردن سرمایه‌گذاری‌هایش میکرد. از این رو گوش به زنگ هر گونه تهدید و تلاطمی بود که سرمایه را تحت تاثیر قرار میداد و در فعالیتش به شدت محتاط بود. شورش 1848 که آلمان را نیز همچون باقی اروپا در نوردید او را ترساند. وقتی سربازان وارد خانه اش شدند تا از جایگاهی مناسب به جماعت شورشی لیک کنند او دوربین اوپرای را در اختیارشان قرار داد تا به دقت نشانگیریشان بیافزاید. دوازده سال بعد تقریبا همه دار و ندارش را در وصیتنامه‌ای به سازمان خیریه کمک به سربازان معلول پروسی که در آن آنجورش جنگیده بودند بخشید. نامه‌های کاری پر را باش اغلب آراسته به خشم و تهدید بود. وقتی بانکداری که پول خانواده شوپنهاور را سرپرستی می‌کرد، به وقف مالی مصیبت باری دوچار شد و برای فرار از ورشکستگی پیشنهاد ارزه فقط بخش کوچکی از سرمایه ی هر یک از سرمایه را داد، شوپنهاور با چنان عواقب قانونی ظالمانهی تهدیدش کرد که بانکدار 70 درصد پول او را باز کردند. در حالی که مجبور بود به سایر سرمایه از جمله مادر و خواهر آرتور کمتر از میزانی که از ابتدا پیشنهاد کرده بود به پرتزد. نامه های توندی که به ناشرش مینوشت سرانجام به گسستگی دائمی این رابطه انجامید. ناشر نوشت: دیگر نباید هیچ یک از نامه‌های شما را بپذیرم، زیرا گستاخی و زموختی آنها بیشتر یک کالسکچی را به ذهن آدم می‌آورد تا یک فیلسوف. فقط امیدوارم ترسم از اینکه با چاپ آثار شما کاغذ حرام کنم، به حقیقت نپیوندد. خشم شوبنهاور ای بود. خشم بر کارشناسان امور مالی که دارایی‌هایش را سرپرستی می‌کردند. بر ناشرانی که نمی‌توانستند کتاب‌هایش را بفروشند. بر توهی که می‌خواستند با او وارد گفتگو شوند. بر دوپایانی که خود را با او برابر فرض می‌کردند. بر کسانی که در کنسرت صرفه می‌کردند و بر مطبوعات که او را نادیده می‌گرفتند. ولی خشم واقعی خشم خشم ها که حرارتش هنوز هم مپوت مان می کند و از شوپنهاور فردی مترود از جامعه روشنفکری زمانه خود ساخت خشمی بود نسبت به اندیشمندان معاصر خیش به ویژه دو ذهن درخشان فلسفه قرن نوزدهم یعنی فیشته و هگل او در کتابی که 20 سال پس از مرگ هگل که در گیری و یا در برلین از پادر درآمد منتشر شد هگل را این گونه نامید مبتزل، توهی، منزجر کننده، و شیادی جاهل که با وقاحتی بی همتا منظومه ای از چرندیات احمقانه تدوین کرده که پیروان مزدورش با عنوان خیرد جاودان به دنیا عرضه کردند. این فورانهای خشم مفراد نسبت به فیلسوفان برایش گران تمام شد. نخستین جایزه در سال 1837 و در مسابقه‌ای که انجمن سلطنتی علم نروژ ترتیب داده بود برای مقاله‌ای در باب آزادی اراده به او تعلق گرفت شوپنهاور برای این جایزه شعفی کودکانه از خود نشان داد این نخستین افتخارش بود و کنسول نروژ در فرانکفورت را با حیاهوی بیصبرانهاش برای دریافت مدال بسیار به درد سر انداخت و سال بعد مقاله اش باب به اخلاقیات که به مسابقه انجمن سلطنتی علم دامار کرده شده بود سرنوشتی کاملا متفاوت یافت گرچه استدلال مقاله اش بود و تنها مقاله ای بود که در این با پذیرفته شده بود داوران به دلیل اظهار نظرهای نامتعادلش درباره هگل حاضر نشدن جای به او اعطا کنند داوران گفتند نمیتوانیم در برابر این واقعیت سکوت کنیم که به چند تن از فیلسفان برجسته دوران مدرن اشاراتی چنان ناشایست شده که میتواند رنجشی جدی و بجا را موجب شود. با گذشت سالها بسیاری با نظر شپنهاور در این باره که نصر هگل به شکلی غیر ضروری مبهم و گیج کننده است کاملا هم شدند. در واقع آثار او چنان دشوار است که یکی از شوخی‌های رایج قدیمی در گروه فلسفه دانشگاه این است که آزاردهنده‌ترین و پر ابهت‌ترین پرسش فلسفی این نیست که زندگی چه معنایی دارد یا خداگاهی چیست بلکه این است که امثال قرار است هگل را چه کسی درس بدهد با این حال شدت و حدت خشم شوبنهاور میان او و سایر منتقدان فاصله انداخت هرچه آثارش را بیشتر نادیده میگرفتند تند و تیزتر میشد و همین به نوبه خود نادیده انگاری بیشتری را به همراه می آورد و در بسیاری کسان اسباب مسحکهش می کرد. ولی آرتور به رغم استراب و تنهاییش جان به برد و به عرضه نشانه هایی از خود بسندگی ادامه داد و در کارش ایستادگی به داد و تا پایان عمر دانشمندی نوآور و اندیش باقی ماند. هرگز زیمانش به خیش را از دست نداد پیش بینی کرد نو سرانجام تأثیری شگرف بر نسل آینده اندیشمندان خواهد گذاشت و حق با او بود همه که پیش کرده بود محقق شده است از چشمانداز جوانی که بنگری زندگی آیندهی دراز و بیپایان است. ولی از چشمانداز پیری تنها ای بسیار کوتاه به چشمت می آید. وقتی با کشتی دور می شویم اجزای ساحل ریز و ریستر می شوند و امکان شناسایی و تمایزشان نیست کمتر. همچون سالهایی که پس پشت نهاده ایم با همه رویدادها ها و تکابوهایشان. فصل سی و چهار هرچه زمان بیشتر می اشتیاق جولیوس برای فرارسیدن روز جلسات هفتگی گروه بیشتر می شد. شاید تجربه گروه برایش پرمعناتر و دلنگیستر میشد. چون این هفته ها متعلق به تنها سال خوبی بود که در اختیار داشت. ولی موضوع فقط رویدادهای گروه نبود. همه چیز زندگیش چه بزرگ و چه کوچک لطیفتر و پرشورتر به نظر می آمد. البته که هفته ها همیشه به پای عمرش شمرده شده بود ولی انگار قبلا این شمارش تا عبد ادامه داشت و هرگز با اتمام این هفته هایی که در اختیار دارد روی روی نشده بود. پایان های مرئی و مشهود هموار ما را به توقف وامی دارند. خانندگان هزاران صفحه از برادران کارامازوف را با اشتیاق و سرعت می ولی فقط تا ده بیست صفحه آخر. از آنجا به بعد ناگهان از شتابشان میكاهند هر بند را به آهستگی مزمزه می کنند و اوساره هر عبارت و هر واژه را میمکند زیق وقت موجب شده بود جولیوس زمان را بسیار گرامی بدارد دارد. چه بیشتر میگذشت بیشتر در مکاشفه شگفت جریان جادویی وقایع روزانه فرو میرفت چندی پیش نتیجه گیری یک هشر شناس را خوانده بود که هماهنگی موجود در یک قطعه خاک محصور دو در دو را بررسی کرده بود. پس از کندن گودانی عمیق در آن دیرت خیش را از دنیای پرتکاپو و پرهیاهوی شکار و شکارچی از کرمها گرفته تا هزار پاها، دنفنریها، سوزکای زردا و کارتونک‌ها وصف کرده بود. اگر ششمندازمان را درست انتخاب کنید توجهمان را معطوف کنیم و دانشمان را وسعت ببخشیم هر روز را با شگفتی و حیرتی ابدی نسبت به روزمرگی هایش آغاز میکنیم این شگفتی را جولیوس در گروه حس می کرد ترسهایش از عود میلانوم فروکش کرده بود و حملات حراسش کم و کمتر میشد شاید بیشتر آرامش ناشی از این بود که تخمین یک سال خوب دکترش را زیادی جدی گرفته بود و آن را نوعی زمانت تلقی کرده بود. ولی مهمتر از آن شیوه زندگیش بود که راه را باز می کرد. در مسیر زرتوشت گام نهاده بود. بختگیش را با دیگران شریک شده بود. با کمک به دیگران از خود برگذشته بود و جوری زندگی کرده بود که میتوانست مشتاقانه و تا ابدیت همین زندگی را تکرار کند همواره درباره باره جهتی که درمانهای گروهی در هفته بعد به خود میگیرند کنچکاف بود حالا که آخرین سال خوبش به وضوح رو به پایان بود همه احساسات تشدید شده بود کنچکاویش بدن شده بود به چشم انتظاری و بیقراری کودکانی برای فرارسیدن جلسه بعد پایان مشخص شده گروه اعضا را به جلو راند تا با اشتیاق و حرارت بیشتری به مسائل اصلیشان بپردازند. یک پایان مشخص برای درمان همیشه چون این نتیجه ای دارد. به همین دلیل بود که درمانگران پیشکشت در همان آغاز درمان تاریخ پایان آن را تعیین کردند. استوارت در این ماه بیش از همه سه سال قبلی درمانش کار کرده بود. شاید فیلیپ همچون آینهای برای استوارت عمل کرده بود. و راهش انداخته بود او در انسانگریزی فیلیپ بخشهایی از خود را دید و دریافت هر یک از اعضای گروه آن دو نفر از جلسات لذت میبرند و گروه را همچون پناهگاهی می‌بینند. جایگاه دریافت حمایت و محبت فقط او و فیلیپ بودند که به زور در این جلسات شرکت می‌کردند. فیلیپ برای آنکه جولیو سرپرستیش را بپذیرد و او به خاطر اتمام حجت همسرش هم در یکی از جلسات گفت گروه هرگز یک حلقه حقیقی تشکیل نداده چون صندلی اسوارت همیشه کمی عقبتر قرار داشته گاهی فقط یکی دو اینچ ولی اینچهایی که به چشم آمدند. بقیه موافق بودند همگی همیشه این عدم تقارن در نشستن را حس کرده بودند ولی هرگز آن را به پرهیز اسوارت از نزدیکی و سمیمیت نسبت نداده بودند در یک جلسه دیگر سوارت شروع کرد به همان گله و شکایت های معمول از دلبستگی زیاد همسرش به پدر خود گفت پزشکی که از استادی گروه جراحی به ریاست دانشکده پزشکی ارتقا یافته بود همین جور که سوارت داشت مثل جلسات پیشین در این باره میگفت که امکان ندارد بتواند احترام و توجه همسرش را به دست آورد چون مدام او را با پدرش مقایسه میکند. جولیوس صحبتش را قطع کرد و پرسید متوجه هست که این داستان را قبلا بارها تعریف کرده است. استوارد پاسخ داده بود، خب آخه ما باید از چیزهایی حرف بزنیم که همچنان به عذیت و آزارشون ادامه میدن، مگه نه؟ و اینجا بود که جولیوس پرسش قدرتمندتری را مطرح کرده بود. هیچ وقت فکر کردی که ما در برابر این تکرارهای تو چه حسی پیدا می‌کنی؟ تصورم اینه که براتون خسته کننده و ملالت آوره. دربارش ف خسته کننده و ملال بودند برای تو چه فایده ای داره و بعدم فکر کن چرا هیچ وقت نشده که با شنوندگانت همدلی داشته باشی استوارت مدت زمان زیادی را در طول هفته به این موارد فکر کرد و بعد گزارش داد چقدر از اینکه تا حالا چنین پرسشی را در نظر نگرفته شگفت زده شده است میدونم که از نظر همسرم خیلی وقتا خسته کننده صفت مورد علاقش برای توصیف من قایبه و فکر میکنم گروه هم داره همین رو به من میگه میدونین فکر میکنم من همدلی هام رو یه جای خیلی امیقی از وجودم انبار کردم کمی بعد استوارد یک مشکل اصلی را بر زبان آورد خشمی مداوم و توجه ناپذیر نسبت به پسر دوازده سالش تونی با پرسشی جابه پاندورا را گشود وقتی به سن پسرت بودی چه حال و روزی داشتی؟ استوارت گفت در فقر بزرگ شده است. پدرش وقتی او هشت ساله بود از دنیا رفت و مادرش که مجبور بود دو کار همزمان داشته باشد هرگز بازگشت او از مدرسه خانه نبود. بنابراین او کودکی تنها بود که خود غذایش را آماده می کرد و گاه چندین روز متوالی با های کثیف به مدرسه می رفت. او موفق شده بود بخش امده ای از خاطرات کودکیش را از خاطر به ولی حضور پسرش او را به ترس بازگردانده بود که سالها فراموششان کرده بود گفت سرزنش پسرم دیوانگی است ولی وقتی رفاه اون رو میبینم قیز و حسادت همه وجودم رو میگیره این تونی بود که با مداخله موثر و شکل خشم سوارت را در هم شکست چطور یکم از وقت تو صرف احساس قرور برای فراهم کردن چنین شرایطی برای زندگی پسرت بکنی؟ تقریبا همه ی اعضای گروه پیشرفت داشتند. جولیوس پیش از این هم شاهد چنین وضعیتی بود. وقتی گروه به مرحله پختگی می رسد، انگار حال همه اعضا همزمان بهتر می شود. بانی در تکاپوی کنار آمدن با یک پارادکس مهوری بود، احساس خشم نسبت به همسر سابقش به خاطر ترک او در برابر احساس رهایی از رابطه با مردی که تا آن اندازه از او بیزار بوده است. گیل در جلسات روزانه الکلی های بینام شرکت میکرد. هفتاد جلسه در هفتاد روست ولی مشکلات زنوشوییش در این دوره هوشیاری به جای کاهش رو به افزایش بود. این البته برای جولیوس عجیب نبود. هرگاه یکی از زوجین با درمان بهبود یا یابد، تعادل و ثبات رابطه زناشویی به هم می‌خورد و اگر قرار است زندگی مشترک ادامه پیدا کند، طرف مقابل هم باید تغییر کند. گیل و روز زوج درمانی را آغاز کرده بودند، ولی گیل متقاعد نشده بود که روز می‌تواند عوض شود. با این حال، دیگر از فکر پایان این زندگی مشترک نمی‌ترسید. برای نخستین بار، معنای یکی از تکری کلامهای مورد علاقه جولیوس را میفهمید تنها راه حفظ زندگی مشترکتان، تمایل و داشتن توانایی رها کردن آن است. تونی با سرعتی شگفتاور کار می کرد. انگار نیرویی که در جولیوس تحلیل می‌رفت مستقیماً به درون او راه می و تراوش می کرد. با تشویق پم و پشتیبانی سایر اعضا تونی تصمیم گرفت تجاهل و شکایت از بی را کنار بگذارد و به جای آن کاری کند و تحصیل را شروع کند. پس در سه کلاس شبانه در کالج محلی ثبت نام کرد. با وجود شور و شعف و خوشنودی حاصل از این های گسترده توجه اصلی جولیوس همچنان بر پم و فیلیپ معطوف بود. نمیدانست چرا رابطه این دو تا این حد برایش مهم شده است ولی معتقد بود دلایل از اصل موضوع پیشی گرفتند گاهی هنگام اندیشیدن درباره پم و فیلیپ به یاد این عبارت میافتاد که نجات یک تن نجات همه دنیا است نجات رابطه این دو خیلی زود اهمیت زیادی یافت در واقع به علت وجودی او بدل شد انگار که با بیرون کشیدن چیزی انسانی از ویرانه های آن رویارویی وحشت انگیز چندین سال پیش می زندگی خویش را هم نجات دهد. همان جور که داشت درباره معنی آن عبارت میاندیشید به یاد کارلوس افتاد. چند سال پیش مرد جوانی به نام کارلوس را درمان می کرد. نه، باید خیلی وقت پیش بوده باشد. دست کم ده سال پیش. چون درباره کارلوس با میریام حرف زده بود. کارلوس مردی بود ناخوشایند خشن، خودمهور و سطحی با میل جنسی بالا که هنگامی برای درمان مراجعه کرده بود که تشخیص لنفوم بدخیم برایش داده بودند. کمک جولیوس به دگرگونی‌های زیادی در کارلوس خصوصا در حیطه ارتباط انجامید و آن دگرگونی‌ها موجب شد با نگاهی گذشته نگر به زندگیش همه ی عمرش را غرق در معنا ببینند. چند ساعت پیش از مرگ به جولیوس گفت. ممنونم که زندگیم رو نجات دادی. جولیوس بارها به کارلوس اندیشیده بود. ولی حالا در این لحظه داستانش تازه می نمود و معنایی خطیر می نه فقط برای فیلیپ و پم، بلکه برای نجات زندگی خودش. فیلیپ در بسیاری جهات در گروه کمتر کسل کننده و بیشتر خوشبرخورد جلوه می کرد. و حتی تماس چشمی گاه و بیگاهی با بیشتر اعضا به جز پم برقرار می کرد. شش ماه گذشت و رفت بیان که فیلیپ مسئله کنارگیری از گروه را به دلیل پایان قرارداد داده شش ماه مطرح کند. وقتی که جولیوس این موضوع را مطرح کرد فیلیپ پاسخ داد برام جالبه که گروه درمانی پدیده خیلی پیچیدهتر از اونی که قبلا فکر می کردم. من ترجیح می دادم در حین اینکه که کارم را با مراجعانم سرپرستی می کنی همچنان در گروه شرکت کنم. ولی تو این پیشنهاد رو به دلیل مشکلات روابط دو جانبه نپذیرفتی انتخاب من اینه که برای یک سال کامل در گروه بمونم و بعد از اون ازت درخواست سرپرستی کنم جولیوس موافقت کرد با این نقشه موافقم ولی قطعا بستگی به وضعیت جسمیم داره چهار ماه دیگه به پایان گروه مونده و بعد از اون باید ببینم چی میشه زمانت سلامتی من یک ساله بود تغییر عقیده فیلیپ نسبت به شرکت در گروه غیر معمول نبود اعضا اغلب با یک هدف مشخص و محدود در ذهن مثلا بهتر خوابیدن کابوس نداشتن یا غلبه بر حراس زدگی وارد گروه می شوند بعد در عرض چند ماه اهداف دیگری را در نظر میگیرند گیرند که دوررستر و فراگیرترند مثلا یاد بگیرند چطور دوست داشته باشند شوق و زندگی را دوباره به دست آورند بر تنهایی غلبه کنند یا برای خود ارزش قایل شوند. گهگاه گروه فیلیپ را تحت فشار قرار میداد تا بیشتر بگوید چطور وقتی روان درمانی جولیوس مطلقاً شکست خورده بود شپنهاور توانسته بود کمکش کند. از اونجا که برای او سخت بود به این پرسش ها شوپنهاور پاسخ دهد یا که پس زمینه فلسفی لازم را فراهم کند، از گروه خواست به او اجازه دهد یک سخنرانی سی دقیقه‌ای در موضوع داشته باشد. گروه به قرقر و شکایت افتاد و جولیوس از او خواست مطالبش را به شکل گفتگو و محاوره تدارک ببیند. جلسه بعد فیلیپ سخنرانی کوتاهی را آغاز کرد و قول داد خیلی مختصر به این پرسش پاسخ دهد که شوپنهاور چطور کمکش کرده بود. با اینکه که در دست داشت بدون ارجاب آنها صحبت کرد. خیره به صحف کلامش را این گونه آغاز کرد. نمیشه درباره شوپنهاور حرف زد و از کانت آغاز نکرد. فیلسوفی که شوپنهاور در کنار افلاتون بیشترین احترام رو براش قائل بود. کانت در سال 1804 یعنی وقتی شپنهاور 16 سالش بود از دنیا رفت. انقلابی در فلسفه پدید و با این بینش که تجربه واقعیت به معنای راستینش برای ما ناممکنه. چون تمامی برداشتها و داده های حسی ما از دستگاه عصبی تشریحی ما میگذره و پردازش میشه. همه داده ها از طریق ساختارهای مطلق و ای چون فضا و زمان برای ما مفهوم پیدا می تونی میان حرفش دوید دست بردار فیلیپ برو سر اصل مطلب. این فکولی چجوری کمکت کرد؟ سب کن به اون هم میرسم تازه سه دقیقه است که حرفمو شروع کردم اخبار تلویزیون که نیست نمیتونم نتیجه گیری های یکی از بزرگترین متفکران جهان رو توی یه جمله توضیح بدم ربکا گفت هی هی دروز زدی به هدف فیلیپ از این جوابت خوشم اومد. تونی لبخندی زد و حرفش را پس گرفت. پس کشف کانت این بود که ما به آن که دنیا رو اونجوری که واقعا هست تجربه کنیم نسخه پرداز شده شخصیمون رو از اون چیزی که هست تجربه می کنیم. مثل زمان، مکان، کمیت، الیت در ماست، نه آنجا. این ماییم که اونا رو واقعیت تحمیل می پس در این صورت واقعیت ناب و خالص و پردازش نشده چیه؟ اون چه واقعا اونجاست؟ اون جوهر خام پیش از پردازش ما چیه؟ کانت گفت آن جوهر همواره برای ما ناشناخته خواهد ماند. تونی گفت قرار بود بگی شپنهاور چطور بهت کمک کرد؟ یادت که نرفته؟ داری گرم میشی دیگه؟ نوت ثانیه دیگه بهش میرسم. کانت و دیگران در آثار بعدیشون همه توجه رو بر شیوه های ما برای پردازش واقعیت نخستین معطوف کردند. ولی شوپنهاور، دیدی؟ داریم بهش میرسیم. راهی کاملا متفاوت رو در پیش گرفت. استدلالش این بود که کانت گونه ای از داده های بنیادین و بلافصل ما رو نادیده گرفته که همون تنهای ما و احساسات ما هستن. اون اصرار داشت که ما میتونیم خودمون رو از درون بشناسیم. مدانشی بیواسطه و بلافصل و غیر وابسته به دریافت و ادراکمون داریم. در نتیجه اون نخستین فیلسوفی بود که از درون به تکانه ها، امیال و احساسات ما نگریست و در باقی زندگی حرف ایش به تفصیل درباره باره دلواپسی ها و موضوعات درونی انسانی نوشت. سکس، عشق، مرگ، رویاها رنج، دین، خودکشی، رابطه با دیگران، قرور، اعتماد به نفس، او بیش از هر فیلسوف دیگه ای به امیال و تکانه های تاریک موجود در عمق وجود ما اشاره کرد که تا به آگاهی یافتن از اونها رو نداری و در نتیجه باید سرکوبشون کنیم. بانی گفت یکم فرویدی به نظر میاد. برعکسش بهتر بگیم فروید شوپنهاوری بوده. بخش بزرگی از روانشناسی فروید رو میشه در آثار چپنهاور دید. با این که فروید به ندرت به این تاثیر پذیری از آن کرده شکی نیست که کاملا با نوشته های شپنهاور بوده. در ویان در دهه 1860 یعنی وقتی فروید مدرسه میرفت اسم شوپنهاور بر سر زبون بود. من معتقدم بدون شپنهاور فرویدی کار بود و نه نیچه اونی بود که ما میشناسیمش. فیلیپ نگاهی گذرا به تونی انداخت و با حول شتاب ادامه داد مباد و صحبتش را قطع کند. شپنهاور میل جنسی منو عادیو به هنجار کرد. وادارم کرد ببینم چطور سکس در همه جاها زره و چطور در امیخترین مرتبه هدف اصلی همه رفتارهای ماست. به هر رابطه تراوش میکنه و حتی بر همه مسائل رسمی و دولتی اثر داره. به نظرم چند ماه پیش در این باره ازش نقل قول کردم. تونی گفت در تایید حرفت پری روز توی روزنامه خوندم پرنگرافی از مجموعه دو صنعت موسیقی و فیلمسازی بیشتر پول جذب میکنه. خیلیه. ربکا گفت فیلیپ میتونم حدس بزنم ولی هنوز ازت نشنیدم که بگی شوپنهاور دقیقا چطور کمکت کرد تا از این اجبار وسواسی یا احتیاد جنسی دست برداری؟ ابی نداره از این اصطلاح استفاده کنم؟ فیلیپ گفت باید دربارش فکر کنم. مطمئن نیستم اصطلاح دقیقی باشه. ربکا گفت چرا؟ چیزی که توصیف کردی از نگاه من شبیه به اتیاده. خب برای اینکه حرف تونی رو پی بگیرم تا حالا شده که یه نگاهی به تعداد مردایی که توی اینترنت پرنوگرافی تماشا میکنن بندازی؟ ربکا پرسید تو هم سراغ پرنوی اینترنتی رفتی؟ من نه ولی اگه واسه مثل قبل بود میتونستم مثل بیشتر مردات چنین مسیری رو پیش بگیرم تونی گفت حق با توه اعتراف میکنم من یکی که دو یا سه بار توی هفته نگاه میکنم اگه بخوام راستش رو بگم کسی رو نمیشناسم که این کارو نکنه گیل گفت منم همینطور این یکی دیگه از دلایل قیز و بدخلقی روزه سرها به سوی استوارت برگشت بله بله منم گناهکارم. یک کمی هم زیاده روی کردم. فیلیپ گفت، منظورم همین بود. پس باید بگیم همه متاده؟ ربکا گفت، خب، حالا منظورتون میفهمم. فقط پر نیست. آزار و اذیت جنسی هم همه گیر شده. خودم از چندین پرونده این جنینی دفاع کردم. چند روز پیش مقاله خوندم درباره رئیس یکی از دانشگاه‌های بزرگ حقوق که به دلیل اتهام عذیت و آثار جنسی استفاده داده. و البته ماجرای کلینتون که از اون برای ساکت کردن صدای بلقوه موثرش استفاده کردن. حالا ببین چند تا از شاکیان کلینتون همونجور رفتار میکنن تونی گفت همه آدم‌ها یه زندگی تاریک جنسی هم دارن. بیشتر برمیگرده به اینکه کی بد اقبال باشه. شاید مردا فقط بلدن مرد باشن. یه نگاه به من بندازین. زندونی شدم فقط برای اینکه روی خواستم در رابطه با لیزی زیادی اصرار کردم. صدها مردو می‌شناسم که کارهای بدتری کردن و هیچ عواقبی هم براشون نداشته. جپکا گفت: "تونی، با این حرفا پیش زنایی که اینجا هستن یا دستکم پیش من محبوب نمیشی ولی نمیخوام تمرکزم را از دست بدم. فیلیپ ادامه بده. هنوز به نکته اصلی نرسیدی فیلیپ معطلی ادامه داد اولا شپنها و سال پیش به جایی نوش, نوش کردن درباره این رفتار وحشتناک و فاسد مردونه علت واقعی اون رو درک کرد قدرت محض شگفتنگیز و بیچون و چرای جنسی بنیادی ترین نیرویی که در ما هست میل به زندگی به تولید مست و نمیشه خاموشش کرد نمیشه با منطق کنارش گذاشت پیش از این گفتم تراوش میل جنسی به هر چیزی رو چطور توصیف کرده یه نگاهی به رسوایی های کاتولیک بندازین اصلا به هر تلاش انسانی هر حرفه هر فرهنگ و هر دوره ای از زندگی آدما نگاه کنین وقتی اولین بار با نوشتههای شوپن اور آشنا شدم این دیدگاهش برام به شدت مهم جلوه کرد یکی از بزرگترین اسهان تاریخ بود که داشت اینو به هم میگفت و من برای اولین بار در زندگیم حس کردم کاملا درک شدم پم که در تمام طول جلسه ساکت بود پرسید و فیلیپ که مثل همه مواقعی که پم را مخاطب قرار میداد به وضوح حسبی مینمود گفت و چی؟ بقیهش، همش همین بود همین اوضای خوب کرد؟ همین که شپنها به این حس رو به داد که فهمیده شدی حالت بهتر شد فیلیپ با لحنی آرام و بیغلوغش جوری که انگار متوجه تنی پم نشده پاسخ داد چیزای خیلی بیشتری بود. شپنهاور متوجهم کرد که ما محکوم شدیم تا ابد با چرخ امیالمون بچرخیم. چیزی رو آرزو میکنیم به دستش میاریم و از لحظه گذرای خوشنودی لذت میبریم. لحظه که خیلی زود به زدگی ختم میشه و بد بیچون و چرا آرزوی بدی و میخواهم بدی از راه میرسه. راه برون رفت براورده سازی و فرونشانی آرزوها نیست. باید به طور کامل از چرخ پایین جهید. این کاری بود که شپنهاور کرد و کاری بود که من کردم. پم پرسید، باید از چرخ پایین جهید؟ این یعنی چی؟ یعنی باید کاملا از آرزو و خواستن گریخت. یعنی کاملا بپذیریم که در سرشت درونیمون تکاپوی تسلیم نپذیر در جریانه. این رنج از آغاز در ما نهاده شده و ما محکوم به داشتن چنین سرشت و طبیعتی هستیم. یعنی اول باید پوچی بنیادین این دنیای پروهام رو درک کنیم و بعد به دنبال راهی باشیم برای دست رد به سینه خواسته ها زدن. باید مثل همه هنرمندای بزرگ هدفمون زیستن در دنیای ناب اندیشه های افلاتون باشه. بعضی از راه هنر این کار رو میکنن، بعضی از راه ریاضت مذهبی شپنهاور با پرهیز از دنیای آرزوها پیوند با اذهان بزرگ تاریخ و با جرفندیشی زیبایی این کارو کرد. روزی یکی دو ساعت فلوت میزد. یعنی آدم باید هم بازیگر باشه و هم تماشاچی. باید نیروی حیاتی رو که در طبیعت ما وجود داره و خودش رو در حسی تک تک ما آدمو نشون میده به رسمیت بشناسیم. این کار باعث میشه در نهایت یعنی وقتی که اون فرد به عنوان یه موجود مادی دیگه وجود نداره اون نیرو احیا بشه. یعنی باید کاملا از آرزو خواستن گریخت. یعنی کاملا بپذیریم که در سرشت درونی ما تکاپوی تسلیم ناپذیر در جریانه. این رنج از آغاز در نهاد ما نهاده شده و ما محکوم به داشتن چنین سرشت و طبیعتی هستیم. یعنی اول باید پوچی بنیادین این دنیای پر اوهام رو درک کنیم و بعد به دنبال راهی باشیم برای دست رد زدن به سینه خواسته ها. باید مثل همه هنرمندای بزرگ هدفمون زیستن در دنیای ناب اندیشه های افلاطونی باشه. بعضی از راه هنر این کارو میکنن، بعضی از راه ریاضت مذهبی. شوپنهاور با پرهیز از دنیای آرزوها، پیوند با اذهان بزرگ تاریخ و با ژرف زیبایی شناسان این کارو کرد. روزی یکی دو ساعت فلوت میزد. یعنی آدم باید هم بازیگر بشه و هم تماشاچی. باید نیروی حیاتی رو که در طبیعت ما وجود داره و خودش رو در هستی تک تک ما آدمانش رو میده به رسمیت بشناسیم این کار باعث میشه در نهایت یعنی وقتی که اون فرد به عنوان یه موجود مادی دیگه وجود نداره اون نیرو احیا بشه. من الگوی اون رو به دقت سرمشق خودم کردم. روابط اصلیم با متفکران بزرگی که نوشته هاشون رو هر روز میخونم. ذهنم رو درگیر روزمرگی نمیکنم، و تمرین های روزانه فکری مثل شطرنج یا گوش دادن به موسیقی برای خودم ترتیب دادم. چون برخلاف شپنهاور توانایی نواختن هیچ سازی را ندارم جولیوز مذهور این گفتگو شده بود واقعا فیلیپ از بغز و کینه پم بیخبر بود؟ یا از خشم و غضبش و این راه حل فیلیپ برای اعتیادش؟ چند باری پیش آمد که جولیوس در دل تحسینش کرد ولی بیشتر موارد را با ریشخند گوش داد و آن گفته فیلیپ که هنگام خواندنش اوپنهاور برای اولین بار احساس کرد درک شده درست مثل سیلی به صورت او نواخته شده بود جولیوس اندیشید پس من چه کارم؟ سه سال تمام خودم رو کشتم که درکش کنم و با اون همدلی داشته باشم ولی چیزی نگفت و ساکت موند فیلیپ داشت به آرامی تغییر می کرد. گاهی بهتره بعضی چیزها رو ذخیره کنیم و در زمانی مساعد در آینده به اونا بازگردیم. چند هفته بعد گروه دوباره موضوع را پیش کشید. آن هم در طول جلسه ای که در آغاز آن ربکا و بانی به پم گفتن از وقتی فیلیپ به گروه آمده او عوض شده یعنی بدتر شده است. همه ی بخش های مطبوع، دوست داشتنی، پربار و بلند نظرانه در حالی که خشمش گرچه به شدت نخستین رویاروییش با فیلیپ نیست، به گفته بانی همچنان همیشه با اوست و به چیزی سنگ دل بیرحم و خشن بدل شده است. ربکا گفت، به نظر من فیلیپ در چند ماه اخیر خیلی تغییر کرده ولی تو همون جایی که بودی گیر کردی. درست مثل وضعی که یه موقعی با ارل و جان داشتی. میخوای این خشم رو تو عبد با خودت نگه داری؟ بقیه اشاره کردند که فیلیپ معدب بوده و به تک تک پرسش های پم حتی ترنامیستری پاسخ کامل داده است. پم گفت مهدب باش، بعد میتونی بقیه رو هر جوری که بخوای بازی بدی. درست مثل موم که فقط وقتی گرمش کردی میتونی باش کار کنی. استوارد پرسی چی؟ پرسش و شگفتی در چهره سایر اعضا هم موج میزد. فقط دارم از مربی فیلیپ نقل قول میکنم این یکی از توصیه های خوشایند و مطلوب شوپنهاوره و من هم درباره رفتار مؤدبانه فیلیپ همین فکر رو میکنم هیچ وقت اینجا نگفتم ولی موقع فارغ و تحصیلی اول فکر کردم روی آثار شوپنهاور کار کنم ولی بعد از چند هفته مطالعه نوشته ها و زندگیش اونقدر از این مرد بیزار شدم که این ایده رو به طور کلی کنار گذاشتم بانی گفت پس تو فیلیپ رو با شوپنهاور یکی میدونی؟ یکی میدونم. فیلیپ ذهن دوقلوی قلوی شوپنهاوره. تجسم زنده اون مرد پست و منفور. میتونم چیزایی از زندگی و فلسفه اون مرد براتون بگم که خون رو توی تنتون منجمد میکنه. و بله، من واقعا اعتقاد دارم که فیلیپ به جای اینکه ارتباط برقرار کنه، افراد رو بازی میده. و بذارین اینو هم بگم. از اینکه فکر کنم اون میخواد با آموزههایی از زندگی شوپنهاور دیگران را ارشاد بکنه لرزه بر میفته. استوارد گفت میشه فیلیپ رو اونجوری که الان هست ببینی؟ اون همون آدم پونزده سال پیش نیست دا. اون اتفاقی که بین شما افتاده همه چیز رو تحریف کرده. نمیتونی از اون اتفاق بگذری و برای همین هم هست که نمیتونی ببخشیش. اون اتفاق یه جوری ازش حرف میزنی که انگار فقط یه که پوسته که از کنار ناخون آوزم شده اون خیلی بیشتر از یه اتفاق بود و درباره بخشش فکر نمی کنی یه چیزایی هست که نمیشه بخشیدشون فیلیپ با صدایی که به ترزی غیر معمول هیجان زده بود گفت اگه تو نمیتونی معنیش این نیست که بعضی چیزا رو نمیشه بخشید سالها پیش من و تو یه قرارداد اجتماعی مدت بستیم. حقیقت اینه که هم من و هم تو چیزی به دست آوردیم. من به لذت و رهایی رسیدم، تو هم همینجور. من چیزی بهت بدهکار نیستم. در گفتگویی که بعد از این اتفاق با هم داشتیم، به وضوح گفتم اصر لذت بخشی رو گذروندیم. ولی آرزو نکردم که اون رابطه ادامه پیدا کنه. چطور میتونستم واضحتر از این صحبت کنم؟ پام جواب داد من از وضو حرف نمیزنم. من دارم از گذشت، عشق، نودوستی و علاقه به دیگران حرف میزنم. تو اصرار داری که من هم در جهانبینی تو شریک بشم و زندگی رو همون جوری تجربه کنم که تو داری تجربهش میکنی. من فقط آرزو میکنم که تو هم در اون درد و رنجی که من کشیدم شریک میبودی. در این مورد خبرهای خوبی برات دارم. حتما خوشحال میشی اگه بدونی بعد از اون اتفاق دوستت مودی نامهای در محکومیت من به تک تک اعضای گروه فلسفه و همینطور رئیس دانشگاه و شورای دانشکده نوشت. با اینکه دکترام رو با درجه ممتاز گرفتم و با اینکه ارزشیابی دانشجویان که اتفاقا تو هم یکی از اونا بودی از من عالی بود، حتی یه نفر از اعضای دانشکده حاضر نشد یه نامه در حمایت از من بنویسه یا به نحوی کمکم کنه شغلی پیدا کنم. به همین دلیل هرگز نتونستم کار مناسبی در زمینه تدریس پیدا کنم و همه این سالا مثل یه سخنران در به در و آواره در یه سری دانش کرده بی ارزش درجه سه درس دادم استوارت که سخت میکوشید حس همدلی در خودش ایجاد کند گفت حتما حس میکنی به سزای کارت رسیدی و اونجا هم تاوان سنگینی رو به تحمیل کرده فیلیپ با شگفتی نگاهش را بالا آورد و بر استوارت دوخت سری تکان و گفت نه به سنگینی تاوانی که خودم برای خودم بریدم فرسوده و بیرمق به پشتی صندلی تکیه داد پس از چند لحظه چشم به سوی پم برگشت که ناآرام گروه را مخاطب قرار داد متوجه نیستید که من درباره یک کار منفرد مجرمانه در گذشته حرف نمیزنم؟ من دارم درباره یه یک شیوه مداوم زندگی توی این دنیا حرف میزنم همین الان که فیلیپ از عشق ورزی ما به عنوان تعهدات یک قرارداد اجتماعی حرف زد، همه تون چندشتون نشد؟ و اون گفتش که بعد از سه سال کار با جولیوس فقط وقتی شپنهاور خونده حس کرده برای اولین بار درک شده. همه شما جولیوس رو میشنسین؟ باورتون میشه که بعد از سه سال جولیوس اون رو درک نکرده باشه؟ گروه ساکت ماند. بعد از چند لحظه پم رو کرد به فیلیپ. میخوای بدونی چرا حس کردی شوپنهاور درکت کرده و جولیوس نه؟ برات میگم چرا. چون شوپنهاور مرده. بیش از صد و چهل سال پیش مرده و جولیوس زنده است. و تو بلد نیستی چطور با زنده ها ارتباط برقرار کنی. به نظر نمی آمد فیلیپ بخواهد پاسخی دهد. پس ریبکا با دست گفت پم داری زیادی سخت گیرین کنی. چی میتونه آرومت کنه؟ بانی گفت، فیلیپ ابلیس نیست پم، از پا در اومده، نمیبینی؟ فرقش رو متوجه نمیشی؟ پام سری تکان داد و گفت، امروز نمیتونم بیشتر از این پیش برم. پس از سکوتی که به شکل محسوسی از آور بود، تونی که تا آن زمان به طرز غیر ساکت مانده بود، پا درمیانی کرد. فیلیپ نمیخوام برا تناب نجات بندازم، ولی برام سواله، میخوام ببینم بعد از اینکه جولیوس چند ماه پیش برامون از مسئله جنسی بعد از فوت همسرش گفت، هیچ احساسی پیدا نکردی؟ فیلیب انگار از عوض شدن موضوع ممنون بود. چه جور باید می‌داشتم؟ با نمیدونم نمی‌دونم. دارم ازت از همینجوری سوال میکنم چیزی که برام سواله اینه که اگه از همون اولی که جولیوس رو دیدی برات میگفت که اونم فشار جنسی رو شخصا تجربه کرده، ممکن بود حس کنی درکت کرده؟ فیلیپ سری به تأیید داد سوال جالبیه. جوابش اینه که شاید بله. شاید بهم به کمک می شود. دلیلی برای ارائه ندارم ولی نوشته های شوپنهاور به من فهموند احساسات جنسی اونم از لحاظ شدت و حدت مثل من بوده. معتقدم همین باعث شد که حس کنم درکم کرده. ولی چیز دیگه هم هست که از دوره درمانیم با جولیوس نگفتم و می الان گزارش رو کامل کنم وقتی بهش گفتم درمانش هیچ تاثیری بر من نداشته منو با سوالی مواجه کرد که کمی پیش در گروه هم مطرح شد. چرا میخوام درمانگری که هیچ سودی به حالم نداشته حالا سرپرستم بشه؟ این سوالش کمکم کرد دو چیز از اون دوره درمانی رو به یاد بیارم که روی من اثر گذاشت و در واقع برام مفید بود. تونی پرسید مثلا چی؟ وقتی یه عصر معمولیم رو براش توصیف کردم و ازش پرسیدم از این توصیف جا خورده یا مشمعیز شده فقط گفت به نظر میاد عصر فوقالعاده خسته کننده ای داشتم. این پاسخ کم کرد. باعث شد متوجه بشم شیوه ی تکراری به حیجان رسیدنم چقدر بیخودی تقدیرم کرده. ایتونی پرسید و اون یکی. جولیوس یه بار ازم پرسید دلم میخواد روی سنگ قبرم چی حک کنند. وقتی به هیچ جوابی نرسیدم یه پیشنهاد داد و این رو هم اضافه کرد که این جمله رو روی سنگ قبر سگم هم, هم می نوشت. بعضی بعضی از, آز سوت یا لبخند زدند. بانی گفت این بچنسیه. فیلیپ گفت نه اینو با لحنه بدی نگفت. منظورش این بود که شکم کنه. و این رو هم کرد و فکر می کنم این جمله در تصمیمی که برای دگرگون کردن زندگیم گرفتم نقش داشت ولی حس میزنم میخواستم این وقایه رو فراموش کنم روشنه که دلم نمیخواد اعتراف کنم درمانش برام مفید بوده تونی پرسید: میدونی چرا ؟ دربارش فکر کردم شاید باهاش احساس رقابت میکنم اگه اون ببره من میبازم شاید دلم نمیخواد اعتراف کنم رویکرد اون در مشاوره که با مال من خیلی متفاوته موثره شاید دلم نمیخواد خیلی بهش نزدیک بشم. شاید اون فیلیپ با سر به پم اشاره کرد. حق داره. من نمیتونم با زنده ها ارتباط برقرار کنم. جولیوس گفت. دستکم راحت نمیتونی ارتباط برقرار کنی. ولی داری موفق میشی. و گروه چند هفته دیگر هم به همین شکل ادامه یافت. حضور بیعیب و نقص، کار سخت پربار و به رغم پرسش های مستربانه مکرر، درباره وضع سلامتی جودیوس و تنش جاری میان پن و فیلیپ پشتگرمی، سمیمیت، خوشبینی و حتی آرامش بر گروه حکم فرما بود. هیچکس برای بمبی که قرار بود به گروه بخورد، آمادگی نداشت. وقتی مردی مثل من زاده می شود، فقط یک چیز دیگر می توان خواست. اینکه در همه عمرش بتواند تا آنجا که ممکن است خودش باشد و برای نیروهای فکریش زندگی کند. فصل سی و پنج خوددرمانی خود زندگی نامه یه درباره خودم بیش از هر چیز دیگر رساله فشرده و خیره کننده ای است در باب تدابیر خود ای که به شوپنهاور کمک کردند از لحاظ روانشناختی سر پا بماند گرچه برخی از تدابیر را در طوفان های اضطراب سه صبح ابدا می کرد و با سر زدن خورشید به سرعت بدور می افکند چون دیگر گذرا و ناکارآمد می برخی دیگر سنگرهای ماندگاری از پشتیبانی و حمایت از کار درآمدند. یکی از اینها باور محکم دیرپا و تغییر ناپذیر او به نبوغش بود حتی در جوانی متوجه شده بودم، در حالی که دیگران برای دارایی‌های بیرونی میجنگیدند، من مجبور نبودم به چنین چیزهایی رو کنم. چون در درون خود گنجی حمل میکردم که بی نهایت ارزشمندتر از دارایی‌های بیرونی بود. و مسئله دام، افزودن بر این گنج بود که شروع تسلیش تکامل ذهنی و استقلال کامل است. من باید برخلاف طبیعت و حقوق انسانی به جای معتوف کردن نیروهایم بر بهبود رفاه خیش آنها را صرف خدمت به بشریت می کردم. من متعلق به خودم نیست بلکه متعلق به همه دنیاست. گفته است باری که نبوغش بر او تحمیل کرده موجب شده مستربتر و مشوشتر از آنی باشد که بر اساس ساختار تواروسی میتوانست باشد یکی از دلایلش این است که نازک نوابق باعث میشود از درد و استراب بیشتری رنج ببرند در واقع شوپنهاور خود را متقاعد میکند که رابطه مستقیمی میان استراب و هوش وجود دارد پس نوابق نه تنها متعهدند استعدادشان را به نفع بشریت بکار گیرند بلکه از آنجا که خود را به طور کامل وقف این ماموریت می کنند ناچارند از بسیاری از رضایتمندی ها همچون خانواده، دوستان، خانه، جمعآوری ثروت که در دسترس سایر انسان هاست چشم پوشند. بارها و بارها خود را با خواندن ویرت که به نبوغش اشاره داشتند آرام کرده است. زندگی من حیاتی قهرمانانه است و با معیارهای نافرهیختگان، کاسبکاران یا مردمان عادی قابل قیاس نیست. پس نباید از نداشتن چیزهایی که بخشی از روند معمول زندگی افراد است افسرده شوم. پس عجیب نیست اگر زندگی شخصیم نامنسجم و بی برنامه به نظر آید. باور شپنهاور به نبوغش معنای پایداری در زندگیش پدید آورد، در تمام عمر خود را مبلغ حقیقت برای گونه ی انسان میدانست. تنهایی دیوی بود که بیش از هر چیز شوپنهاور را به تنگ می آورد و دفاعهای ماهرانه در برابر آن افراشته بود. ارزندهترینشان نشان این اعتقاد راسخ بود که او هر باب سرنوشت خیش است. خودش تنهایی را برگزیده، نه اینکه تنهایی او را برگزیده باشد. وقتی جوانتر بود می گفت تمایل دارد معاشرتی باشد. ولی بعد علاقه به تنهایی کم, کم در من پدید آمد امدا مردم گریز شدم و تصمیم گرفتم باقی این زندگی زود گذر و ناپایدار را وقف خودم کنم. بارها به خود یاداوری میکند من در زادبوم خود نیستم و در میان موجوداتی همسنگ خود زندگی نمیکنم به این ترتیب دفاعهایش در برابر تنهایی قدرتمند و عمیق بود او تنهایی را داوطلبانه برگزیده بود سایر موجودات ارزش مصاحبت با او را نداشتند. مأموریتی که با مهوریت نبوغش در زندگی براحت گرفته بود، فرمان به تنهایی و انزوا داده بود. زندگی نوابق باید یک نمایش یک نفره باشد و زندگی خصوصی یک نابغه باید فقط در خدمت یک هدف باشد. تسهیل زندگی اندیشمندانه بر این اساس، هرچه زندگی خصوصی کوچکتر، امتر و بهتر شبنهاور گاهی از فشار تنهایی شکوه می کرد همه عمر به شدت احساس تنهایی کردم و همیشه از عمق وجودم آه براوردم که اکنون دیگر یک انسان به من بده ولی دریق از یک نفر در انزوا ماندم ولی صادقانه و شرافتمندانه میگویم که خطا از من نبوده است زیرا از هیچ کسی که انسان بوده باشد نه پرهیز کردم و نه روی گرداندم. همچنین می گفت حقیقتا تنها نبوده است زیرا این هم یکی دیگر از تدابیر قدرتمند خود درمانی است. حلقه دوستان نزدیک خیش را داشته است. اندیشمندان بزرگ جهان. فقط یکی از این موجودات یعنی گوته با او محصر بوده. بیشتر آنها به تاریخ باستان به ویژه رواقیون که از آنان بسیار نقل قول می کنند تعلق داشتند. تقریبا تک تک صفحات درباره خودم حاوی کلمات قصار یک ذهن بزرگ است در جهت تأیید باورهای خودش. نمونه هایش بهترین یاری به ذهن آن است که یک بار برای همیشه تمامی پیوندهای عذاب ای که دل را در بند خیش گرفتار کرده رها کنید. اوید شاعر رومی هر آن کس که در پی صلح و آرامش است باید از زنان که سرچشمه دیرپای مزاحمت و مشاجر اند دوری جوید. پترارک شاعر و دانشمند ایتالیایی برای کسی که تنها به خیش وابسته است و همه آنچه او را فرا در خود دارد شادی تمام عیار ممکن نیست. سیسرو سخنور و دولتمرد رومی یکی از تکنیک های مورد استفاده بعضی سرپرستان گروه درمانی یا گروه های رشد فردی تمرین من که هستم است اعضا هفت پاسخ جداگانه به پرسش من که هستم بر هفت کارت جداگانه می نویسند و سپس کارت ها را به ترتیب اهمیت مرتب می کنند بعد از آنها خواسته می شود هر بار یک کارت را برگردانند از فرعیترین پاسخ آغاز کنند و تمرکزشان را بر این قرار دهند که چه می شود اگر اجازه دهند آن پاسخ از آنها دور شود. یعنی در آن زمینه از خود سلب هویت کنند. تا زمانی که به صفات خود اصلی یا مهوریشان برسند. شوپنهاور هم شیوه‌ای مشابه داشته و صفات گوناگونی را که به خود نسبت می‌داده یک به یک دور افکنده تا به آنچه خود مهوریش دانسته رسیده است. گاه به این دلیل احساس ناراحتی می‌کردم که خود را غیر از آنچه بودم می‌پنداشتم و بعد بر فلاکت و رنج آن موجود افسوس می‌خوردم. مثلا خود را سخنران و مدرسی فرض می‌کردم که به استادی دانشگاه نرسیده و شنونده ای ندارد. یا خود را کسی می دیدم که این نافرهیختگان در سخنان ناشایست می گویند. یا شایع اپراکنان در ور راجی می کنند. یا خود را آشقی می دیدم که دختر محبوبش به او گوش نمی دهد. یا خود را بیماری می دیدم که بیماری خانه نشینش کرده. و یا خود را کسان دیگری فرض می کردم که دوچار فلاکت هایی از این دستند. من هیچ یک از اینها نبودم. این ها پارشه های سازنده تن که مدتی کوتاه برسن کردم و بعد آن تن پوش را به دور افکندم و چیز دیگری پوشیدم. پس من که هستم؟ من آن مردی هستم که کتاب جهان به مسابقه اراده و بازنمود را نوشته و راه حلی برای مشکل بزرگ جهان هستی پیشنهاد کرده است که شاید تمامی راه حل‌های پیشین را از رواج بیندازد. من آن مرد هستم و چه چیز میتواند چون این مردی را در چند سالی که هنوز جان در بدن دارد بیازارد. یک تدبیر آرامش بخش مرتبط دیگر باور او به این مسئله بود که دیر یا زود شاید پس از مرگش آثار او شناخته خواهد شد و روند پژوهش فلسفی را به شدت دگرگون خواهد کرد. او ابراز این نظر را از جوانی آغاز کرد و باورش به موفقیت نهایی هرگز متزلزل نشد. در این مقوله همانند نیچه و که دو اندیشمند مستقل دیگر که در زمان خیش قدرشان شناخته نشد بود این دو نیز کاملا و به درستی به شهرت پس از مرگشان باور داشتند او از هر گونه تسلای ماورای طبیعی دوری می کرد و تنها تسلاهایی را میپذیرفت که مبتنی بر یک جهانبینی طبیعت گرایانه بودند برای نمونه باور باورداشت رنج حاصل این است که فرض می بسیاری از وضعیتهای اضطراری زندگی اتفاقی و در نتیجه اجتناب پذیرند. به مراتب بهتر از حقیقت را دریابیم. اینکه در درد و رنج بخشی جدایی ناپذیر گریز ناپذیر و ضروری از زندگی است. بپذیریم چیزی به بخت و اقبال وابسته نیست مگر شکل محض بخت که خودش خودش را آشکار می کند. و رنج فیلی ما جایی را می که بدون آن به وسیله رنج دیگری آکنده میشد اگر این طرز فکر به باور زندگی فرد بدل شود، درجات قابل ملاحظه ای از بردباری خیشتندارانه را موجب می شود. او اصرار دارد همکنون زندگی را تجربه کنیم به جای آنکه به امید آیندهی بهتر زندگی کنیم. دو نسل بعد نیچه این فراخان را دریافت کرد. او امید را بزرگترین آفت برای ما به شمار آورد و از سقراط و مسیحیت خورده میگیرد که چرا توجه ما را از تنها زندگیی که مالک آن هستیم برمیگرداند و آن را به دنیایی واهی در آینده معطوف میکند کجای آن تک همسران واقعی همه ما برای مدت زمانی و بیشتر ما برای همه عمر زندگی چند جفتی داریم و از آنجا که هر مرد به زنان زیادی نیاز دارد چیزی منصفانه تر از این نیست که او را متعهد کنیم زنان زیادی را تامین کند این کار زن را به جایگاه حقیقی و طبیعیش به عنوان یک موجود زیر دست و دون پایه تنزل میدهد فصل سی جلسه بعد را پم آغاز کرد امروز باید چیزی رو اعلام کنم همه ی سرها به سوی او برگشت امروز روز اعترافه بجام تونی تونی از جا پرید و صاف نشست برای مدت زمانی طولانی به پم خیره شد بعد به پشتی سندلی تکیه داد دست به سینه نشست و چشمانش را بست اگر کلاه بر سرداش، حتماً آن را تا روی صورت پایین میکشید. پن با این گمان که تونی قصد اظهار نظر ندارد، با لحن جسور و راحت خود ادامه داد. مدتی من و تونی با هم وارد رابطه شدیم و برای من سخت مرتب بیام اینجا و در این باره هیچی نگم. پس از سکوت کوتاه و پرهیجانی پرسش ها با تت پته از راه رسیدن. چرا؟ چی باعث شد شروع بشه؟ چند وقته؟ چطور تونستی؟ چطور پیش میره؟ پم با سرعت و با خون سردی پاسخ داد چند هفته هست؟ از آینده چیزی نمیدونم و نمیدونم چی شد که شروع شد قبلا روش فکر نکرده بودیم ولی یه روز عصر بعد از جلسه اتفاق افتاد ربکا به نرمی پرسید تو نمیخوای به ما بپیوندی تونی؟ تونی به آرامی چشمانش را گشود برای منم یه خبر تازه است خبر تازه؟ یعنی میگه واقعیت نداره؟ نه منظورم روز اعترافه این بجوم تونی این برام خبر تازهیه. استوارت گفت به نظر نمیاد خوشت اومده باشه تونی چرخید و رو به پم گفت منظورم اینه که من دیشب پیشت بودم میدونی؟ منظورم سمیمی بودنه صمیمیت چند بار اینجا شنیده باشم خوبه که زنا خیلی حساسترن و بیشتر از رابطه جنسی محض خواهان صمیمیت بیشترن پس چرا اونقدر صمیمی نبودی که با من دربارش حرف بزنی و این روز اعتراف رو از قبل با من هماهنگ کنی پن با با لهنی بدون تاسف گفت متاسفم اوزام جفت و جور نبود بعد از اینکه تو رفتی بیشتر شب رو بیدار و تو فکر بودم به گروه فکر کردم و متوجه شدم زمان خیلی کمی باقی مونده. فقط شش جلسه دیگه باقی مونده، درست چه جولیوس جولیوز درسته شش جلسه دیگه جز این جلسه خب یهو متوجه شدم چقدر به تو نارو زدم جولیوس و همین جور به قراری که اینجا با همه داشتم و همین جور به خودم بانی گفت هیچ وقت نتیجی گیری نکردم ولی حس می کردم توی این چند جلسه اخیری یه چیزی سر جای خودش نیست. تو عوض شده بودی پم؟ یادم این ربکا بیش از یه بار این رو حس کرد. به ندرت درباره مسائل شخصی تلف می زدی. من دیگه نمی دونستم بین تو و جان چی می گذره یا همسر سابقه هنوز توی صحنه هست یا نه؟ بیشترین کاری که می کردی حمله به فیلیپ بود. گی افزود. تونی تو هم همینطور حالا که دربارش فکر میکنم میبینم تو هم واقعا عوض شده بودی یه جورایی قایم میشودی دلم برای اون تونی سابق که راحت برای خودش جولون میداد تنگ شده جولیوس گفت چاتو مسئله دارم اول چیزی که پم با به کار بردن واژه قرارداد ازش حرف زد میدونم حرفم تکراریه ولی ارزش تکرار رو داره به خصوص برای اونایی که بعدها ممکنه در گروهی شرکت کنن جولیوس نگاهی گذرا به فیلیپ انداخت یا حتی گروهی رو سرپرستی کنن تنها قراردادی که تک تک ما باید بهش متحد باشیم اینه که همه تلاشمون رو برای بررسی رابطهمون با تک تک اعضای گروه بکنیم خطر یه رابطه ی خارج از گروه اینه که کار درمانی رو به مخاطره میندازه. چطور این کارو می افرادی که توی یه رابطه تنگاترین قرار می گیرن در بیشتر موارد به اون رابطه بیش از کار درمانی اهمیت میدن. ببینید دقیقا چه اتفاق اینجا افتاد نه فقط تونی و پم رابطهشون رو مخفی کردند که این قابل فهمه بلکه در نتیجه گیری شخصشون از کار درمانیشون در اینجا هم عقب افتادن پم گفت البته تا امروز دقیقا تا امروز و من کاری رو که امروز کردی تحسین می کنم. تصمیمت رو برای مطرح کردن موضوع در گروه تحسین می کنم. خب میدونی که میخوام چه سوالایی از تو تونی بپرسم. چرا حالا؟ شما دو سالونی می که هم دیگر رو توی این گروه میشناسین. ولی حالا اوضاع عوض شده. چرا؟ چند هفته پیش چه اتفاقی افتاد که شما رو به این تصمیم واداشت که با هم وارد ورده رابطه نزدیک بشین؟ پام به سوی توتونی برگشت. ابروها را بالا برد و به او اشاره کرد پاسخ دهد. تونی ترجمه کرد اول آقایوم بازم نوبت منه باشه اشکالی نداره من دقیقا میدونم چی عوض شد پم رضایت داد و به علامت داد قبول منم از همون اول آماده بودم و اگه اون 6 ماه پیش یا دو سال پیش رضایت داده بود من همون موقع شروع میکردم. میتونید اسمو بذارید آقای در دسترس گیل گفت هی hey, این همون تونی سابقه که من میشناسمش و دوستش دارم خوش اومدی جبکا گفت آسون میشه فهمید که چرا عوض شده بودی تونی داشتی با پم راه میومدی و نمیخواستی همه چیز رو خراب کنی منطقیه پس قایم شدی و برای نشون دادن بخش های نچندان خوبت محتاط شدی تونی گفت منظورت بخش جنگلیمه؟ شاید آره شایدم نه موضوع این قدرم ساده نیست ربکا پرسید یعنی چی؟ یعنی اینکه همون بخش نچندان خوب بود که پم رو تحریک کرد ولی نمیخوام بهش بپردازم چرا که نه؟ دست بردار ربکا موضوع روشنه چرا منو نشونه رفتی؟ اگه من همینجوری به حرف زدن ادامه بدم باید رابطم با پم رو ببوسم بذارم کنار ربکا سماجت کرد مطمئنی؟ تو چی فکر میکنی؟ اصلا فکر نمی کردم اینجوری موضوع رو توی گروه مطرح کنه و اونو یه قرار قبلی به حساب بیاره تازه میگه تصمیمش هم گرفته؟ داره گرمم میشه صندلی داغ داره جدی جدی داغ میشه صندلی داغ است در گروه درمانی زمانی که گروه در یک یا چند جلسه بر یکی از اعضا مرکز میشود؟ جلووس سوالش رو از پم درباره زمان شروع رابطه باتونی تکرار کرد و پم در برابر آن به شکل غیرمعمولی دو دل بود نمیتونم از دور نگاهش کنم هنوز زیادی بهش نزدیکم اینو میتونم که هیچ فکر قبلی و نقشه قبلی براش نداشتم یه عمل تکان یعنی یه جور هوس بود بعد از یه جلسه با هم قهوه خوردیم فقط ما دوتا بودیم چون بقیه شما هر کدوم رفته بودید به راه خودتون دعوتم کرد شام بگیره. این کارو قبلا هم خیلی زیاد کرده بود. ولی این بار من پیشنهاد کردم بیاد خونه من و یه سوپ خونگی با هم بخوریم. اونم اومد و همه چیز از کنترل خارج شد. حالا چرا اون روز و رو نمیتونم بگم. ما قبلا هم با هم زیاد وقت میگذروندیم من درباره ادبیات تونی حرف می زدم بهش کتاب میدادم بخونه. بهش میکردم درس خوندن رو دوباره از سر بگیره و اونم به من نجاری یاد داد. کمکم کرد یه میز تلویزیون بسازم. یه میز کوچولو. اینا رو تو میدونی. حالا اینکه چرا را تموم به اینجا رسید و چرا حالا؟ نمیدونم. جولیوس گفت: دلیس میخواد سعی کنی علتش رو پیدا کنی؟ میدونم صحبت درباره یه چیزی که اینقدر خصوصیه اونم در حضور یه منشوق اصلا کار ساده ای نیست. من امروز مسممم. اومدم اینجا که کار کنم. خیلی خوب. سوالینه به گروه فکر کن. وقتی این رابطه شروع شد چه چیزای مهمی اینجا در جریان بود؟ از وقتی از هند برگشتم دو تا چیز برام بزرگ شده. اول وضع سلامتی تو. یه بار یه مقاله عجیب و غریب خوندم که میگفت افراد در گروه ها جفت پیدا میکنن با این امید ناخوشاگاه که از زاد و رودشون یه سرپرست جدید بیرون بیاد. ولی این خیلی دور از ذهنه. جولیوس، نمیدونم چطور ممکنه مرضیه تو منو وادار کرده باشه که بیشتر درگیر رابطه با تو بشم. شاید ترس از تموم شدن گروه باعث شده من به دنبال پیوند شخصی با باشم. شاید هم خیلی غیر منطقی تصور کردم این مسئله باعث میشه گروه بعد از یه سال هم ادامه پیدا کنه. فقط دارم حدس میزنم. جولیوس گفت گروه ها هم مثل آدمان. دلشون نمیخواد بمیرن. شاید رابطت با یه راه خم بوده برای زنده نگهت داشتن گروه. همه گروه های درمانی سعی میکنن ادامه پیدا کنن. گرد همایه منظم داشته باشن. ولی به ندرت این کارو میکنن. همانجور که قبلا هم بارها اینو بهتون گفتم گروه زندگی نیست یه تمرین نهایی برای نمایش زندگی همه ما باید راهی پیدا کنیم تا چیزایی رو که اینجا یاد گرفتیم به زندگیمون در دنیای واقعی منتقل کنیم پایان سخنرانی جولیوز ادامه داد ولی پم تو گفتی دوتا تا چیز برات بزرگ شده یکیش سلامتی من بود دومیش چیه؟ اون یکی فیلیپه. ذهنمو مشغول کرده. ازش متنفرم جولیوس. تو گفتی ممکنه حضورش برام یه نعمت باشه. بهت اعتماد دارم آن. ولی تا حالا به غیر از شهر هیچی نبوده. البته شاید یه چیز استثنایی اینجا باشه. اینقدر مذهور تنفر ازش هستم که به کلی دلمشغولیم به شوهر قبلیم و جان از بین رفته. جولیوس سماجت کرد. خب پس فیلیپ برات بزرگ شده آیا ممکنه حضور فیلیپ نقشی در زمان شروع رابطت با تونی ایفا کرده باشه؟ هر چیزی ممکنه حدث چیه؟ پم سری به نفت کنداد من ارتباطی نمی بیشتر فکر می کنم شده بودم ماها بود که با هیچ مردی نبودم این برای من کم پیش میاد فکر نمی کنم موضوع خیلی پیچیده باشه. جولیوس اعضای گروه را از نظر گذراند. واکنش. استوارت به میان پرید. ذهن تیز و منظمش به نتیجه ای رسیده بود. قضیه بیشتر از تعارض بین پم و فیلیپه. کلی رقابت این ستمت رایه. شاید زیادی دارم کشش میدم ولی نظرم اینه. پم همیشه جای کلیدی تو گروه داشت. استاد دانشگاه، علامه در، کسی که مسئولیت تونی رو بر گرفته بود. بعد چه اتفاقی میفته؟ چند هفته از گروه میره و وقتی برمیگرده میبینه فیلیپ جاش چونبات مزه به نظر من این قضیه آدم آدمو درمونده میکنه. استوارت رو کرد به پم. هر گله و شکایتی که از پونزده سال پیش ازش داشتی حالا با چیزهای دیگه هم قاطی شده و بدتر شده جولیوس پرسید و ارتباطش با تونی خب شاید این هم شیوهی برای رقابت بوده اگه درست یادم مونده باشه همون موقع ها بود که پم و فیلیپ هر دو سعی میکردن پیش های تسکین دهنده به تو بدن فیلیپ اون داستان کشتی متوقف توی یه جزیره رو بین همه پخش کرد و یادم میاد تونی خیلی محو اون بحث شده بود. رو کرد به پم. شاید این برای تو تهدید کننده بود. شاید دلت نمیخواست نفوز تو روی تونی از دست بدی. پم جواب داد ممنون سوارد. خیلی روشن کننده بود. منظورت اینه که من باید برای رقابت با این زامبی با همه مردهای گروه رابطه برقرار کنم؟ نگاه تو به توانایی زنا اینه دیگه گیل گفت واقعا که آدم تشویق میشه بازخورد بده و اون شوخی زامبی هم خیلی ربط بود من آرامش فیلیپ رو به این ناسزاگویی هیستیری که هر روزی ترجیح میدم پم توی خانم عصبانی هستی نمیتونی مثل دیونا رفتار نکنی؟ جولیوس گفت اینا حسای خیلی نیرومندی هن. گیل چه اتفاقی داره میفته فکر می کنم توی این پم جدید عصبانی خیلی از خصوصیات همسرم رو میبینم. تصمیم گرفتم از جنسی هیچ کدومشون نگذرم. گیل کمی بعد اضافه کرد. و یه چیز دیگه هم هست. فکر می کنم از این همه نامر موندن برای پم رنجیدم. رو کرد به پم. دارم شخصی و روک و راست باهت برخورد میکنم. میخوام بدونی در چه حسی دارم. بهت میگم چطوری تو رو قاضی القضاعت میبینم ولی تو اصلا منو نمیبینی. هیچی چی نمیشه. من همچنان مهم نیستم. تو فقط چش دنبال فیلیپ و تونیه. و فکر میکنم دارم مسائل خیلی مهمی رو باهات درمیون میذارم. اینم یکی دیگش. فکر میکنم میدونم چرا جان از قفص پرید. به دلیل بزدلیش نبود. دلیلش خشم تو بود. پم غرقه در فکر خاموش ماند. جولیوس گفت یه عالم احساسات نیرومن داره میریز بیرون. بیاین یه نگاهی بهشون بندازیم و سعی کنیم درکشون کنیم. کسی نظری نداره؟ بانی گفت من سراحت امروز پم رو تحسین میکنم و میتونم بفهمم چقدر حس ناشی بودن میکنه. برای دست و پنجه نرم کردن گیل با پم هم خیلی ارزش قائلم. یه تغییر مابورده کننده در توی گیل خیلی تحسینش میکنم. ولی بعضی وقتها آرزو میکنم کاش میذاشتی فیلیپ خودش از خودش دفاع کنه. اصلا نمیفهمم چرا این کارو نمی کنه. رو کرد به فیلیپ. چرا این کارو نمیكنی؟ فیلیپ سری تکان داد و خاموش ماند پام گفت اگه حرف نزنه من به جاش جواب میدم اون داره دستورت آرتور شوبهناوه رو اجرا میکنه یادداشتی از کیفش درآورد آن را مرور کرد و خواند بدون حیاجات صحبت کنید خود انگیخته نباشید مستقل از دیگران بمانید فکر کنید در شهری زندگی می کنید که شما مالک تنها ساعت آن شهر هستید که درست کار می کند. این خدمت زیادی به شما می کند. بیعتنائی راه کسب احترام است. فیلیپ سری به قدردانی تکانداد و گفت. مطالبی رو که خوندید تعیید می کنم. به نظر میاد نصیحت خوبی برام باشه. استورت پرسید. اینجا چه خبره؟ پم یادداشتهایش را بالا گرفت و پاسخ داد یه نگاه جسته گریخته به نوشتههای شوپنهاور انداختم پس از سکوتی گذرا ربکا گروه را از بنبست درآورد تونی کجایی تو سر چی میگذره تونی با تکان دادن سر گفت امروز برام حرف زدن سخته می میکنم دست و پان بسته است انگار منجمد شده باشم در این قافلگیری همه فیلیپ پاسخ داد فکر میکنم میفهمم چی دست و پاتو بسته همون جور که جولیوس گفت مثل این میمونه که بین دو درخواست متضاد گیر کرده باشی ازاد انتظار میره برای کار در گروه آزادانه احساست رو به زبون بیاری و همزمان داری سعی میکنی به تعهدت نسبت به پم هم وفادار بمونی تونی گفت آره اینو میفهمم ولی فهمیدن کافی نی منو از وضعی که توش هستم در نمیاره ولی بازم ممنون خب اینم یکی برای تو چیزی که یه دقیقه پیش گفتی منظورم تایید حرف جولیوسه اولین باره که میبینم باهاش نجنگیدی فکر میکنم تغییر بزرگی مرد فیلیپ پرسید گفتی فهمیدن کافی نیست چه چیز دیگه ای لازمه تونی سری تکان داد امروز برام ماسونی نی رو به تونی گفت فکر میکنم میدونم چی کمکت میکنه تو هم امروز دارین از هم دوری میکنین و احساساتتون رو نشون نمیدین شاید نگهشون داشتین که بعداً ازشون حرف بزنین میدونم نخوش آینده. ولی میشه سر صحبت رو همینجا بازش کنی؟ میشه سعی کنید با هم حرف بزنید نه با ما؟ متاسفم، فلی هر دوی ما میدونستیم این موضوع باید یه وقتی آشکار بشه. دربارش حرف زده بودیم. همین؟ همینو داری بگی؟ امشب چی میشه؟ هنوز با هم هستیم یا نه؟ ادامه دیدارمون خیلی ناجوره. قانون اینجا اینه که درباره همه روابط حرف بزنیم و من میخوام به قرار دادم با گروه پای بعد بمونم. نمیتونم ادامش بدم. شاید بعد از اینکه گروه تموم شد، فیلیپ حرف پم را با نشانه های غیر معمولی از سراسیمگی برید تو آسان ترین و انعطاف پذیرترین برخورد و با قراردادها داری. فقط تا جایی بهشون پایبندی که به نفعت باشن. وقتی من از قرارداد اجتماعی که در گذشته بین ما بود حرف میزنم، بهم و بیراه میگی. ولی خودتو ببین، قوانین گروه ببین چجوری زیر پا میذاری. وارد بازیهایی پنهانی میشی و بلهوسانه از تونی استفاده میکنی پم با صدای بلند بر سر فیلیپ فریاد زد تو کی هستی که بخوای از قرارداد حرف بزنی پس قرارداد بین استاد و دانشجو چی فیلیپ نگاهی به ساعتش انداخت از جا برخاست و اعلام کرد ساعت شیشه تعهد زمانی من تموم شده و اتاق را ترک کرد در حالی که زیر لب می‌گویید، امروز به اندازه کافی تو لجن قلد زدم. این باری بود که کسی جز جولیوس جلسه را به پایان می برد.